اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الیف لام ميم تلك الكتاب الحكيم این ايات كتاب حکیم است مود و رحمتا للمحسنين مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرتهم يوقنون همانان که نماز را برپا دارند و زکات را میپردازند و آنها به آخرت یقین دارند من ربهم و هم آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاراند وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئیک لهم عذاب مهين. و بعضي از مردم سخنان بیهود را میخرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند برای آنان عذابی خار کننده است و ایده تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرا مستکبرن لم یسمعها لم كأن وقرا بعذاب و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود مستکبران روی برمیگرداند گویی آن را نشنیده است گویی اصلا گوشهایش سنگین است او را به عذابی دردناک بشارت ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن ما لكثاني که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند باغهای پر نعمت بهشت از آن آنهاست خالدین فيها وعد الله حق وهو العزيز الحکیم جاودان در آن خواهند ماند این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها, فيها من كل دابه و انزلنا من السمائی ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم او آسمانها را بدون ستونی که را ببینید آفرید و در زمین کوهایی افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبنده ای روی آن منتشر ساخت و از آسمان آبی نازل کردیم و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش رویاندیم هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی مبین این آفرینش خداست اما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه چیز را آفریده اند ولی ظالمان در گمراهی آشکارند ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لِلّه ومن یشکر فانما یشکر لنفسه و من این ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند تراک خداوند بی و ستوده است فَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می‌کرد گفت پسرم چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگی است و وصین الانسان بوالده حملته, حملته امهو وهنا على وهن و فصالهو فی عامین و فصالهو فی عامین انشکر لی ولی والدیک ایلی المصیر و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخارگی او در دو سال پایان میابد. آری به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر بگا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.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 و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیزی را هم تای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن، و از راه کسانی پیروی کن که تو بکنن به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است، و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می يا بني إنها إن تكونوا مثقال حبة من خردل فتكون فِي في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیک یا بد باشد و در دل سنگی یا در گوشه ای از آسمانها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آبرد. خداوند دقیق و آگاه است. یا بُنی اقیم الصلاه و امر بالمعروف و عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور پسرم نماز را بر دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می‌رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور پسرم با بی از مردم روی مگردان و مغروران بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير بسران در راه رفتن اعتدال را رعایت کن از صدای خود بکاخ که زیشترین صداها صدای خران است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 آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کنند. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وهنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید میگویند نه بلکه ما از چیزی پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند باز هم تبعیت میکنند؟ و من وجهه او الله و هو محسن فقد استمسک فقد استمسک بالعروت الوثقا و این الله عاقبت الامور کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکو کار باشد به دستگیره محکم چنگ زده و عاقبت همه کارها به سوی خداست ومن من کفر فلا یحزن که کفره ایلینا مرجعهم فننبعهم بما عملو این الله علیم بذات صدور و کسی که کافر شود کفر او تو را قمگی نسازد بازگشت همه آنان به سوی ماست و ما آنها را از اعمالی که انجام دادهاند. و نتایج شوم آن آگاه خواهیم ساخت خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است. ما اندکی آنها را از متاع دنیا بهرمند می کنیم سپس آنها را به تحمل عذاب شدیدی وادار میسازیم. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ و هرگاه از آنان سؤال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است مسلما میگویند الله بگو الحمد لله ولی بیشتر آنان نمیدانند لله ما فی السماوات الله هو الغنی الحمید آنچه در آسمانها و زمین است از خداست چرا که خداوند بینیاز و شایسته ستایش است ولو أن ما فی الرض من شجرة قلامو والبحر مده و البحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفیدت ما نفیدت كلمات الله این الله عزیز حكيم و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریا چه به آن افسود شود اینها، همه تمام می شود ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد خدا عزیز و حکیم است ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده این الله سمیع بصیر آفرینش و برانگیختن همه شما در قیامت همانند یک فرد بیش نیست خداوند بند شنوا ببین است الم <تصفح> تر اللَّهَ الله يولج الليل في النهار النَّهَارَ فِي النهار في الليل وَالْقَمَرَ كُلٌّ الشمس والقمر كل يجري وَأَنَّ اللَّهَ مسمى تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می‌کند و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير اینها همه دلیل بران است که خداوند حق است و آنچه غیر از او میخوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است الم تر أن الفلك تجری في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته این نفیدان که آیا ندیدی کشتی ها بر صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت نعمت او حرکت می کنند تا بخشی از آیاتش را به شما نشان دهد؟ در اینها نشانه است برای کسانی که شکی با و شکر گذارند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 و هنگامی که در سفر دریا موجی همچون عبرها آنان را بپوشاند، خدا را با اخلاص میخوانند اما وقتی آنها را به خشکی رساند و نجات داد، بعضی راه اعتدال را پیش میگیرند و به ایمان خود وفادار میمانند. در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کفر را پیش میگیرند. ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس سپاس انکار نمی‌کند یا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود جواز عن والده شيئا این وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرونکم بالله الغرور ای مردم تقوای الهی پیش کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را به یقین وعده الهی حق است پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مقرور سازد این الله عنده و علم الساعت و ينزل الغیث و ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بی ای تموت این الله علیم خبیر آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند و آنچرا که در رحمهای های مادران است میداند و هیچکس کس نمیداند فردا چه به دست می آورد و هیچکس کس نمیداند در چه سرزمینی میمیرد خداوند عالم و آگاه است